صفحه هفتصد و چهل و ه شاه داد پا... این ملکه بزرگوار میدانم شما قصدی جز صفحه نداشتید ولی من فقط قدری ترسیدم مخصوص از آن کلمات که انسانها رو به شکل دیگری در میآورد ولی حال که من از کیک شما خورده میل دارم محبت کنید و از این کیک من هم میل فرمایید ملکه برای دوباره به دست آوردن اعتماد شاه نسبت به خود بیچون و چرا کیک او را گرفت و در دهان گذاشت در همین لحظه همشاهبد مشت آب بر صورت او پاشید و فریاد برآورد ای جادوگره پدید از صورت انسانی خارج شو و به شکل مادیان درای. در آی. در همان لحظه ملکه عشق به صورت مادیان زیبایی درآمد و به قدری از این تغییر صورت ناراحت و ناخشنود بود که باران اشک از چشمانش جاری گردید و سر خود را به پایین فرود آورد تا دل شاخبت را به رحم ورد گتش شاخبت دلش به حال او سوخ ولی دیگر کاری از او ساخته نبود و نمی توانست مادیان را به حالت انسانی برگرداند شاخبت مادیان را به استف برد و از محترخواست تا زین و برگی بر روی آن گذارد ولی هیچ کدام از اینها برای پشت آن مادیان مناسب نبود ناچار شاخبت خود سوار بر اسب دیگر شد و از محترخواست مادیان را به دنبال او حرکت دهد. و به این ترتیب خود را به دکان عبدالله رسانید وقتی عبدالله از دور مادیان را همراه شاه بعد دید فهمید که شاه آنچه را که او گفته است به مرحله عمل در است و خوشحال شد که جادوگر پلید مسیزای اعمال ناپسندیده خود رسیده است شاه آنچه را که در طول این مدت گذشته بود از جمله به صورت مادیان درآوردن آوردن ملکه همین را برای عبدالله تعریف کرد عبدالله که فهمید زین مناسبی برای این مادیان پیدا نشده است، خود زین مخصوصی را آورد و به شoauth داد و روی مادیان گذاشتند. عبدالله گفت: اینک باید سوار این مادیان شوی و به پایتخت کشور خود مراجعه کنی، ولی توجه داشته باش که هیچگاه این مادیان را به حال خود نگذاری و همیشه افسار آن را در دست داشته باش. شoauth هم غلط به همان ترتیب رفتار کند، و از عبدالله خود حافظی کرد و به سوی دروازه شهر حرکت کرد. شاهباز همین که از شهر خارج شد، سوار برمادیان راه پیمود. با خود می‌اندیشید که چقدر خوشنود است. سرانجام اینجا دوگر نه بدنحال را به این شهر آورده. بعد از سه روز مسافرت به شهر بزرگی رسید و در آنجا پیرمردی با وقاری دید که پیاده به سوی خانه اج اش و اشرت در حرکت است. همین که مرد سال خورده او را دید، ایستاد و از شاه پرسید: اهل کجا هستید؟ شاهباز همیستاد و به گفتگو کردن پرداخت. در همین دست بانوی سالخورده به آنها رسید در کنارشان ایستاد و همین که چشمش به مادیان افتاد سیر اشک از دیدگانش جاری شد شاه پرسید مادرجان برای چه اینطور گریه گریه میکنی؟ پیرزن پاسخ داد پسر من مادیانی داشت که اینن شبیه همین مادیان بود و من و پسرم آن را بسیار دوست داشتیم اخیراً مادیان ما ناپدید شده است حالا که این را دیدم به یاد مادیان خودمان افتادم و گریه‌ام گرفت خواهش دارم آن را به ما بفروش. شاهبت گفت: مادر، این مادیان را نمیفروشم. پیرزن گفت: به خاطر خدا درخواست مرا رد مکن و این محبت را از من دریغ مدار. اگر این مادیان را به من نفروشی، من و پسرم هر دو از قصه تلف خواهیم شد و خدا را خوش نمیآید. شاهپاد پاسخ داد: مادر، اگر میتوانستم این را به شما هدیه میکردم، ولی نمیتوانم. و اگر هم می حداقل حد قیمت آن هزار سکه طلا تلا می بود. پیرزن فوراً کیسته ای از کمر خود بیرون کشید و گفت بفرمایید این هم هزار سکه طلا تلا. مادیان را به من بدهید. شاه باز که از سر و بزه جوریده و لباس کهنه و فقیرانه پیرزن هرگز حدس نمی زد. او قادر به پرداخت هزار سکه تلا باشد صحبت از قیمت مادیان به میان آورده بود. ناباوری شاه باز از به بالاترین اندازه خود رسیده بود قدی فکر آنگاه گفت: «مادر من درباره قیمت نظاح کردم و اساسا نیت فروش ندارم زیرا این مادیان برای فروش نیست در این هنگام مرد سال خورده لب به سخن گشود و گفت پسرم لازم میدانم شما را از یک موضوع که به نظر میرسد از آن میخبرید آگاه کنم و آن این است که در این شهر نباید دروغ گفت و اگر کسی را و تشخیص دهند مجازاتش مرگ است اینکه شما با این بانو معامله کرده اید و باید مادیان را در برابر هزار سکه طلا به او بدهید و الا باید کیفر مرگ را بر هم هموار کنید. شاه بعد که از ناپختگی خود حس می کرد خود را به انداخته است بسیار ناراحت شد ولی ناچار بود که مادیان را از زیر فرمان خود خارج کند و همین که افسار آن را به دست پیرزن داد ناگهان پیرزن مشتی آب از نهر خیابان برداشت و روی مادیان پاشید. و گفت دخترم از این حالت به صورت اول برگرد در یک نصف مادیان به صورت ملکه عشق نمایان گردید در همین نصف پیرزن ملک عشق را در آقوش گرفت و سوطی کشید و بلافاصله جن از این مجسهی حاضر شد و شاهبد را روی یک شانه و پیرزن و ملکه جادوگر را روی شانه دیگر گذاشت و به هوا برخاست و در یک چشم هم زدن آنها را به قصد ملک عشق در شهر جادو همین که به قصد رسیدن ملک شروع به ناسزاگویی کرد و گفت این امون یه نمک نشناس تو به جای محبت هایی که به تو کردم این گونه با من رفتار کرد سزای هر دوی شما را خواهم داد آنگاه مقداری آب روی شاه پاشید و گفت ای بدبخت حقیقین به صورت جغد نابینایی در شاهم شاه هم فورا به شکل جغد نابینایی درآمد. آمد به یکی از ندیمه هایش دستور داد آن را بدون آب و غذا در قفسی زندانی کند ندیم هم که اتفاقا از دوستان عبدالله بود برخلاف دستور ملک عشق به وقت کور آب و گوشت و غذا میداد و فورا هم عبدالله را از ماجرای تازه شاه بج و نقشه شوم ملک عشق درباره او و شاه بج آگاه ساخت و گفت اگر تأخیر کنی جان هر دو در خطر خواهد افتاد عبدالله بلافاصله به کمک سهر و جادو جلن بالداری را احسار کرد و به او فرمان داد در قصر ملکه ی عشق بانوی نیکنهادی را که به شاه بعد کرده بود بردارد و با خود پای تخت کشور ایران پرواز دهد و بانوی نیکنهاد به ملکه گلنار بگوید که شاه در چنین وضع خطرناکی است و احتیاج به کمک فوری شما دارد این دیو هیولا که نامش برق است در یک لحظه خود را به قصر ملکه عشق رسانید و, و بانوی نیکوکار را همراه خود به پای تخت ایران برد و در ایوان قصر ملک گلنار فرود آمد و بانو را در آنجا گذاشت و ناپدید شد بانو ملک گلنار و ملک مادر را ملاقات کرد و پیام عبدالله را به آنها داد ملک گلنار از فت شادی فریادی کشید و فورا دستور داد تبل و شیپور و کوس و خرنا در تمام کشور به صدا درآید و به تمام اهالی خبر دهند که شاهبت فوراً صحیح و سلامت به کشور باز میگردد آنگاه ملک مادر از طریق جادو شاه صالح را احضار کرد و به او گفت ش... شاه بعد در چنگ ملکه شهر جادو اسیر است و فورا یه بیاری او شتافت شاه صالح فوراً لشکریان کشورهای زیر دریا و ولشگریان اجنبی و متحدین آنها را آماده کرد و با سرپرستی و سپه سالاری خود این همه سپاهی و لشکر را همراه ملکه گلنار و سایر شاهزاده خانم در مدت چند ثانیه به کشور ملکه جادو برد و در همان لحظه ورود ملکه به کلیه سپاهیان و ملازمان و, و نگهبانان او را نابود ساخت. ملک گنار جفت پور را از داخل قفس بیرون آورد و با کمک جادوی خود فورا به به شکلی اشی شاه‌بدر برگرداند و شاه‌بدر خود را به آغوش ملکه انداخت و مادر و پسر یکدیگر را بوسیدند و گریه کردند و از دیدار با یکدیگر خوشنود شدند. آنگاه ملکه مادر نوه خود را در آغوش کشید و او را بوسید. عبدالله که در آنجا حاضر شده بود از دیدن ملکه گلنار خوشحال شد ملکه رو به عبدالله کرد و از محبت‌های او تشکر فراوان کرد و گفت شما جان شاهباد فرزند عزیزم را نجات دادید نمیدانم چگونه از های شما سپاسگزاری کنم خود را مدیون شما میدانم. عبدالله گفت ای یه بزرگوار فقط یه خواهش از شما دارم و آن این است که چنان چه بانویی که در سمت راست شما ایستاده و پیام مرا برای شما آورده رضایت به زناشویی با من دهد و پادشاه پس هم موافقت کند من حاضرم بقیه عمر خود با آن بانو در خدمت پادشاه ایران بگذرانم این بزرگترین آرزوی من است ملکه گلنار در این لحظه نگاهی به سوی آن بانو انداخت و بانو هم با شرم و فروتنی رضایت خود را اعلام کرد شاه پس موافقت خدا با پیشنهاد عبدالله سریحا به آگاهی ملکه رسانید از گفت ای مادر, مادر گرامی من ازدواج عبدالله را با این بانو پیوند شایسته می اما هنوز یک پیوند دیگر هم باقی است که آرزو دارم شما منظور مرا درک کرده باشید ملک گلنار اول متوجه منظور شاه بعد نگردید اما بعد از چند لحظه فکر کردن گفت پسرم منظورت عروسی خودت است. من با تمام وجودم با آن موافقت دارم آنگاه ملک گلنار به سپاهیان برادر خود بالاشکر اجنه که همه در خدمت او بودند نگاهی انداخت و گفت در دریاها و زمین جستجو کنید و شایسته ترین شاهزاده ها را برای ازدواج با شاه بج پسرم برگزینید و به من خبر دهید شاه بر پاسخ داد ای بانوی بزرگوار نیاز ندارد که این سپاهیان زحمت جستجو به دهند من از ته دل به شاهزاده گوهر دختر پادشاه کشور سمندل داده و به هیچ کس به اندازه او دلبستگی ندارم او زیباترین شاهزاده دنیا دنیاست اگر هم در باره من بیمهری نشان داده ایرادی بر او نمیتوان گرفت و او بر حسب وظیفه فرزندی دست به آن رفتار زده است زیرا من تا حدودی سبب جنگ و مبارزه و دستگیری پدر او و زندانی کردن او شده بودم هرکس دیگری هم جای او بود همین رفتار را نشان میداد فکر میکنمد در حال حاضر شاه سمندل و شاهزاده گلنار هر دو به این ازدواج جزایت دهند ملک گلنار گفت فرزندم اگر شاهزاده گوهر تنها ای است که تو را خوش می کند من از ازدواج تو با او رضایت دارم در این هنگام ملک گلنار دستور داد این از دو آوردند سپس مخلوطی از چندین گرد در آن آتش و تمام غشب به در درآمد و بعد از چند لحظه پادشاه کشور سمندل و افسران شاه در آنجا نمایان شدند شاه بعد فورا در مقابل او زانو زد و تقاضای موافقت با ازدواج خود با شاهزاد گوهر را کرد شاه سمندل هم موافقت خود را اعلام داشت و او را از زمین بلند کرد و در آغوش خود گرفت و گفت شما سمیمانه دخترم را دوست دارید مسلحت در آن است که با یکدیگر پیوند زناشویی ببندید و اطمینان دارم که زندگی همراه با شادکامی و خوشبختی خواهید داشت در این موقع معمورین جستجوگر شاهزاد گوهر و نظیمه های او او را در حضور شاه سمندل آوردند شاه او را در آغوش کشید و گفت دخترم همسر شایسته برای تو برگزیدم و آن همسر پادشاه جوان کشور ایران است که در آنجا ایستاده و شایسته ترین و تواناترین شاهان روی این زمین است او که از میان تمام شاهزاده خانم ها تو را به همسری خود برگزیده باید به نشانه ی سپاسگزاری از او او را به همسری تو بپذیریم شاهزاده گوهر پاسخ داد پدرم عوامل شما را همواره اطاعت کرده ام و خوشوقت خواهم شد که شاهنشاه ایران بیحرمتی و گستاخی مرا نادیده انگارند و متوجه باشند که هر چه کردم به حکم وظیفه و دفاع از خانواده بوده است جشن زناشوی با شکوه و شاهانه‌ای در همان قصر ملکی شهر جادو برپا گردید و تمام جوانانی که روزگاری دلداده ملکه بودند و بعدا توسط ملکه تبدیل به چارپایانی شده بودند با کمک ملکه گلنار به حالت اصلی خود بازگشتند و همه آنها از این محبت بزرگ از ملکه گلنار شاه و شاه صالح سپاسگذاری کردند همه این حیوانات که قربانی عشق ناپاک ملکه بدنهاد شده بودند یا فرزندان پادشاهان کشورها و یا شاهزادگان درجه اول کشورها بودند شاهصانه دوباره سلطنت را به شاه سمندل برگردند و خود به کشور زیر دریاها بازگشت و شاه ایران هم که به آرزوی خود رسیده بود همراه شاهزاده گوهر به پایتخت تخت کشور خود مراجعت کرد و ملک گلنار و ملک مادر و شاهزاده خانمهای دیگر هم همراه ایشان بازگشت کردند سرگذشت قانم فرزند ابو ایوب معروف به آشق در روزگار قدیم در شهر دمشق بازرگانی زندگی میکرد که بر اثر کاردانی و کوشش ثروت هنگفتی که آورده بود و زندگی آسوده و آبرومندی را میگذرانید. نام او ابو ایوب بود و یک پسر و یک دختر داشت. پسرش در ابتدا قانم نامیده میشد ولی بعدها او را آشق نقب دادند. او جوان خوش سیما و تربیت شده بود که زیر سرپرستی پدر و معلومین سرکاره آگاهی و دارش فراوان داشت نام دخترش دل بود زیرا زیبایی او به حدی بود که همه در نخستین دیدار به او دل میباختند وقتی ابو ایوب بترود زندگی گفت سفت بسیار داشت انبارهای متعددی انباشته از پارچه های زربفت و انواع پارچه های عبدشمی گرانقیمت در انبارهای خود داشت که جزئی از دارایی او را تشکیل می‌داد انواع کالاهای پارچه‌ای آماده برای ارسال به بغداد بود و روی هر یک از بسته‌های پارچه با کلمات درشت نوشته بود به مقصد بغداد حکمران دمشق پایتخت سوریه در آن هنگام محمد ابن سلیمان اموزاده هارون و رشید بود که از طرف هارون برگزیده شده بود قانم از مادر خود پرسید منظور از به مقصد بغداد چیست؟ مادر شهر داد که پدر تو هر بار کالاهای خود را به یکی از شهرها و کشورها بیفرستاد. این بار هم نام شهر بغداد را روی آن نوشته بود چون آزم آنجا بود و کالاها را به آن شهر میخواست حمل کند که مرگ مهلتش نداد. مادر قانم در اینجا به گریه افتاد و عشق مانه ادامه سخن او شد. بعد از آنکه مادر به حال عادی برگشت، قانن گفت: "چون این کالاها باید به بغداد حمل شود و اگر به این شکل در زیر آفتاب و باران باقی بماند از بین می رود من هر چه زودتر آماده سفر بغداد شوم و این کالاها را در آنجا به فروش می رسانم و پول خوبی به دست میآورم. مادر قاسم پاسخ داد: "من موافقم که تو دنبال کار پدرت را بگیری، ولی در حال حاضر تا هنوز تجربه یه سفر و هموار کردن ناملایمات جاده های طولانی را نداری و خیلی هم جوان هستی علاوه بر این من در حال سوگواری پدر تو هستم و اگر تو هم بخواهی مرا تنها بگذاری قبل مرا بیشتر خواهی کرد. بهتر است که پارچه ها را به بازار قرار بفروشی و در همین جا نزد من بمانی زیرا سفری به این درازی خطراتی هم به همراه دارد. قانم به اتماس مادر توجهی نکرد به بازار بردفروشان رفت و چندین برده قوی حکر خرید و یک ست چطور هم برای بارکشی اجاره کرد و لوازم دیگر هم تهیه نمود و با کمک آنها کالاها ها رو روی شطورها جای داد و به اتفاق پنج شش بازرگان دمشقی آزن سفر به بغداد شد قانه و این بازرگانان با بازرگانان دیگر هم سفر شدند و کاروان بزرگی به راه انداختند و زرخریت های او هم همراه او حرکت کردند با این ترتیب از راهزنان که اعراب بادیه نشین بودند دیگر ترسی نداشتند. این اعراب بادی کاروانیان را قافل گیر کرده و انوان آنها را تاراج می کردند. خوشبختار کاروان قانم به سلامت به نزدیکی دروازه شهر بغداد رسید. کاروانیان در یکی از کاروانسراهای آبرومند و معروف شهر توقف کردند. ولی قانم کاله های خود را به شهر برد و در یکی از اموارهای مطمئن امانت گذاشت و خودش هم خانه‌ای بسیار زیبایی در یکی از محله‌های اشرافی بغداد کرایه کرد که دارای باغ با صفا و نهر آب و درختان میوه و اتاقهای متعدد بود که اساسی و لوازم گرانبهایی هم آنجا را زینت بخشیده بودند. بعد از چند روز که قالقلم خستگی سفر از بدنش درآمد و در خانه جدید سر و سامان یافت، های تازه و گران‌قیمت پوشید و از خانه به محل گرد همایی بازرگانان شهر، جایی که تجار با یکدیگر کلاهای خود را رد و بدل و گفتگو می‌کنند، رفت و یکی از های خود را هم با مقداری پارچه ابریشمی و زربفت به بازار برد. بازرگانان محلی قانم را خوشامد گفتند و با مهربانی و ادب با او رفتار کردند و رئیس تجار همه پارچه‌هایی را که آن روز قانم به بازار آورده بود، با همان قیمتی که قانم روی آنها برچسب زده بود از او خرید و روزهای بعد هم به همین ترتیب قانم تمام کالاهایی را که از دمشق با خود آورده بود به قیمت دلخواه خود به فروش رساند. از کاله های قانم فقط یک بسته دیگر در انبار باقی بود و آن را به خانه خود برد روز بعد که به بازار رفت متوجه شد که برخلاف انتظار او همه تجار دکانهای خود را بسته اند از علت آن جویا شد، پاسخ دادند که یکی از بازرگانانش تشناس شهر فوت کرده و همه بازرگانان به تشجی او رفتند. قانه محل برگزاری مراسم را جویا شد و خود را به آن مسجد رساند و بعد از پایان جلسه تذکر همراه جمعیت به گورستان شهر رفت و در آنجا بازرگان را در آرامگاه خانوادگی به خاک سپردند. بعد از آن امام مسجد و سایر ملاها دوره هم روی فرش نشستند، و به خواندن آیاتی از قرآن پرداختند، شب فرارسید و طبق شیوه معمول در بغداد، سفره غذا گسترده شد. زیرا شرکت کنندگان در مراسم صودواری حتما باید غذا هم میخوردند. چادرهای متعددی در بیابان برافراشته بودند تا برطرم شب را در آخه ها بگذرانند و از حرارت آفتاب و شبت سهرگاهی محفوظ باشند. قانن بسیار نگران بود زیرا در خانه خود چندین صندوق مملا از های طلا نگهداری میکرد و در های او در آنجا بودند و اشیاء های گرانبههایی در اتاقها نگهداری میشد با خود میگفت راهزنان از قیبت من استفاده میکنند و همه اموالم را به سرقت خواهند برد او چند لغمهای خورد و به طور پنهانی از بیار جمعیت خارج شد و راه بیاباد در پیش گرفت تا به خانهاش برگشت اما چون جاده بسیار تاریک بود نمیدانست به چه سویی در حرکت است تا اینکه در نیمه شب به کنار دروازه شهر رسید. متأسفانه آن را بسته یافت. قانم بسیار ناراحت شد و متوجه شد ناچار از شب را در آنجا بخوابد و در پی یافتن محلی برای خوابیدن بود که به گورستان عمومی شهر رسید که محل وسیعی بود و از آنجا به یک آرامگاه خانوادگی وارد شد که در آنجا درخت خرمایی هم سر به فلک کشیده بود. قانم آنجا را پناهگاه مناسبی یافت و روی علفها به پشت دراز کشید. زیر بدن خود احساس ناهمواری میکرد و خوابش نمیبرد از جای برخاست و در آن محوطهٔ آرامگاه به قدم زدن پرداخت سرانجام به دری رسید آن را گشود و قدم به بیرون گذاشت نور ای از دور نمایان بود قانم فورا خود را به عقب کشید و با سرعت از درخت خرما بالا رفت و بالای درخت روی شاخهای نشست وزن محل امن، قسمت پایین و زمین های اطراف را نگاه می‌کرد. در پرتوی نور چراغ بادی، سه مرد را دید که وقت قلامان زرخرید را بطن دارند و دو تن از آنها صندوقی را بر روی شانه های خود حمل می کنند که بزرگی آن به اندازه دو متر در یک متر بود و یک تن دیگر هم چراغ بادی و کلنگی در دست دارد آنها درست در زیر همان نخل خورمای از دادند و صندوق را روی زمین گذاشتند و یکی از آن سه خرید به رافقای خود گفت: دوستان، صندوق را همینجا بگذاریم و برگردیم. یکی دیگر از آنها گفت: نه، این پیشنهاد تو آن چیزی نیست که بانوی ما از ما خواسته است، اگر از فرمان او سرپیچی کنیم، ممکن است مایه پشیمانیمان گردد. به هر حال همگی توافق کردند و با کلنگی که همراه داشتند، زمین را به مقدار کافی کندند و جعبه را در داخل آن گذاشتند. و را با خاک پوشانند و حسطن به شهر بازگشتند قانون که از بالای درخت سخنان آمس را شنیده بود با خود گفت حتما صاحب این صندوق اشعای گرانبههایی در این صندوق پنهان کرده است که خواسته در زیر زمین آن را دفت کنند از درخت به زیر آمد و شروع به پس زدن خاک روی صندوق شد و بعد از مدتی خاکها را رو از روی صندوق به کناری زد آن وقت قفل بزرگی بر در صندوق دید و با هزار سحمت چند تکی قلب سنگ بزرگ از اطراف دست آورد و توانست قفل را بشکند در این هنگام هوا رفته رفته روشن میشد. همین که در صندوق را باز کرد بانوی جوان و بسیار زیبایی را آن دید که تا قلون مانند آن را ندیده بود گونههایش به رنگ گل به بود و از حرارت ملایم سینه‌هایش پی برد که او زنده است تحجب می کرد که گونه بر اثر صدای زربه های سنگ بر روی قف او از خواب بیدار نشده است گردن بند مروارید و گوشواره ها و دستبندهای بند های و به خصوص رخت بسیار گرانبها ها و اشرافی او نشان میداد باید از بانوان خاندان سلطنتی باشد زیبایی و جوانی آن بانو سبب شد که قانم با کوشش بسیار به یاری او بشه و در یک چشم هم زدن. بالوی در حال خواب را از داخل صندوق بر روی علف ها گذاشت در همین درست چشمان او گشوده شد و طرفات هوای آزاد سبب شد که نوشابه آلوده به مواد خوابآور از دهانش خارج شود ادسه کرد و حرکتی به خود داد و به هوش آمد در حالی که چشمان خود را میمالید مالید صدا زد گل بستان شاخه مرجان محبوبه روشنایی روز ستاره صبحگاهی، و شادی زمان اینها نام شش کرنیزکی بود که در خدمت این بانو بودند صدای دلپذیر این بانو دلقانم را از شادی لبریز می ساخت. وقتی این بانو پاسخی در برابر این نامها نشنید به اطراف خود نگاه کرد و فهمید که در میان گورستانی قرار گرفته است بسیار ترسید و با صدای بلند فریاد زد آیا روز رستاخیز مردگان است؟ آیا روز محشر فرارسیده است؟ قانم برای جلوگیری از ترس بیشتر این مانو پاسخ داد ای بانوی بزرگوار من در خدمت شما هستم من قانم هستم آنگاه آمدن سه غلام زر خرید و آوردن صندوقی را که این مانو در داخل آن جای گرفته بود و دفت کردن صندوق را در زیر خاک و بالاخره گشودن صندوق و بیرون آوردن او را از آن برای او بیان کرد بانو او تشکر فراوان کرد و گفت من با این رخت نمیتوانم همراه شما در خیابان حرکت کنم. بهتر از قاتلی کرایه کنید. و... و این صندوق را که من داخل آن خواهم رفت به خانه خودتان هم کنید. در آنجا که رسیدیم من سرگذشت خود را تعریف خواهم کرد. مطمئن باشید محبت شما را هرگز از یاد نخواهم برد. قالم قبل از آن که دنبال کرایی کردن قاتل برود با را داخل صندوق کرد. ولی در آن را به طور کامل جفت نکرد. تا هوا در آن جریان کند سپس با عجله از گورستان بیرون رفت و قاتلی را با صاحب آن به گورستان آورد و به صاحب قاتل گفت صندوق را روی قاتل به خانه او هم کند و خودش هم کمک کرد صندوق را پشت قاتل جای دادند قالب هم در دنبال صاحب قاتل به سوی خانه رست شد در سود راه نگران بود که حادثهی برای این فرشته ماهرو پیش نیاید تا او به سلامت به خانه برسد قانم برای نخواستین بار، گرمی اسقراط را در دل خود احساس می کرد. وقتی صندوق سالم به خانه رسید، آن را به داخل خانه بردند. صاحب قاطر هم دنبال کار خود رفت و قانم به های خود دستور داد، در خانه را بستند و بانو را از صندوق بیرون آورد و گفت: میدانم به شما خیلی سخت گذشته است. بانو هم در پاسخ گفت: خداوند شما را برای یاری من فرستاد که مرا از این ناراحتی رها ساختید. بفتار انسانی قانم سبب سپاس بانو گردید. بعد از چند لحظه نقاب از چهره برداشت. قانم از دیدن چشمان و صورت زیبایی بانو میتاب شده بود و انتظار داشت بانوی زیبا هم محبت های او را تلافی کند. قانم با خود گفت بهتر است اول از این بانو پذیرایی کنم. به همین سبب یکی از زبخرید های خود را به بازار برد و به چلوپس خانه ای رفت و خودنی های بسیار خرید. سپس از دکان میوه فروشی چند میوه تهیه کرد و بهترین شراب را هم تهیه کرد و با مقداری نان تازه به خانه آورد بلافاصل میوه ها را در میوه خوری جای داد و واش خواب های آورد و خوردنی های لذیذ را هم در کنار آن گذاشت و در حالی که در برابر بانو ایستاده بود از او خواهش کرد خوردن و نوشیدن آغاز کند بانو هم گفت باید با هم شروع کنیم. سپس دو نفری بر سر سفره نشستند و مشغول خوردن شدند. در این هنگام قانم متوجه شد که روی لبه نقاب بانو که در گوشه افتاده بود کلماتی زردوزی شده است. بانو نقاب را به دست قانم داد و خواهش کرد آنها را برای او بخواند. و قانم چنین خواند: من خود را متعلق به تو می دانم و تو هم که از دودمان پیامبر و از اموزادگان او هستی به من تعلق داری؟ منظور از اموزادگان پیامبر همان هارون رشید بود که از خانواده عباسی عموی پیامبر اسلام بود که اینک با قسمتی از جهان حکومت می کرد. قاضی پس از خواندن آن عبارات روبه بانو کرد و با لحن بسیار غمگینی گفت: من شما را از مرز زهانیدم. قافل از اینکه کلمات زردوزی شده روی نقاب بشارت دهنده مرگ من خواهند بود. همین قد بیخبر که آدم بدبختی هستم. من از لحظه دیدارت دیدارت تو گشتم و به تو دل باختم اما حالا میبینم که با چه وضع دشواری روبرو رو هستم ولی به هر حال قبل از آن که به دارم کیستی به دام عشق شدم و آگاهی بعدی من از تعلق تو به دیگری مرا را ناامید نمی‌سازد. خواهش دارم درباره خودت من بیشتر آگاه ساز سخنون قانم مانوی جوان را تکان داد اشک قانم سر و زیر بود با نوعی خوشنودی در دل خود احساس میکرد. او هم برای پذیرش عشق قانم آمادگی داشت گرچه میکوشید آن را از قانم پنهان کند بانو گفت به نظر می آید آن بود و از شما نمیخواستم آن عبارات را بخوانید. زیرا نمیدانستم که آن سبب ناراحتی شما خواهد شد اما نام من فتنه است که معنی آن طوفان است و این است که هنگام زایید شدن من به من داده شده